باد و طوفانی گرم و نامت بود بود. فقط به ندرت بارانی میآمد که آن هم اندک بود. ولی هوا مرتوب گرفته و انباشته از بوی گند بود. صدای به هم خوردن و افتادن با زوزه باد گوش را پر میکرد. به چشم آن بزک کرده تبدار چنان مینمود که گفتی، ارواح باد دست به کار پلیدشان شدند، مرغان ناخجسته دریا، خوراک محکوم نفرین شده را چنگ میزنند، نک میزنند و به فضولات میالایند. چون هوای گرفته حال غذاخوردن را سلب میکرد و این تصور به ذهن میآمد، غذاها با مواد بیماریزا مسموم شدند. یک روز عصر که آشنباخ در تعقیب زیبا پسر و درون کلاف سردرگم شهر و بازده در قلتیده بود، با از دست دادن حس تشخیص مکان، چون کوچه ها، آبراه ها، پل و میدانچههای این وادی سرگردانی بیش از حد به هم همانندند، به جهت یابی خود نیز دیگر اطمینانی نداشت، پس سعی میکرد، پیکری را که با شور و شوق تقییب میکرد، گم نکند و این چونین با احتیاطهای حقارتباری که از مراعاتشان ناگزیر بود همچون پشت دیوارها خم شدن و در پس هیکل آبران پناه گرفتن دیگر اصلا به خستگی و کوفتگی که از احساس درون و حیجان مدام به جسم و روحش وارد می آمد، توجهی نداشت، تا چیو پشت سر کسانش راه می رفت، در تنگنای کوچه ها معمولا حق تقدم را به پرستار و خواهران راه به وارش می داد. و همچنان که سلان, سلان گام بر می داشت، گاه سر را بر می تا به نگاهی با چشمان خاکستری سپید فام از تعقیب خود توسط عاشقش اطمینان حاصل کند. او را می دید و چیزی بروز نمی داد. آشنباخ سرمست از این آگاهی و در حلقه زنجیری که جنون عشق بر گردنش انداخته بود، در پی امید ناشایست خود دوان بود و بالاخره هم او را از دست داد لهستانی ها از پدی کوتاه و خمیده گذشته بودند به گونه ای که قوس پل آنها را از نظر تعقیب کننده پنهان می کرد و چون او خود به بالای پل رسید دیگر از آنها خبر نبود در سه جهت به دنبالشان به جستجو برد در جهت مقابل و در دو طرف بارنداز باریک و کسیف که بیهوده بود خسته و از پای درآمده به ناگزیر از جستجو دست برداشت. در سرش آتشی گدازان بود و تنش از عرق چسبناک شده بود گردنش به لرزه افتاده بود از اتش میزود در پی خوردنی یا نوشیدنی که فورا نیرویش را به او بازگرداند، چشم گرداند جلوی میوه فروشی کوچکی ایستاده قدری توت فرنگی که بیش از حد رسیده و نرم شده بود خرید و در حال راه رفتن از آن خورد میدان کوچکی که متروک و نفرین شده می نمود، در برابرش آغوش گشود میدان را باز شناخت همینجا بود که هفته ها پیش نقشه فرار نافرجام را در سر پرورانده بود بر پله های حوز قناتی وسط آن محل پاس پاسوست کرده سر بر سنگ دور حوز گذاشت صدایی بر نمی‌خواست. از لابلای سنگ فرش علف رویده بود اینجا و آنجا زباله ریخت در میان خانه های کوتاه و بلند و مخروبه گرد میدان یکی بود که با کتیبه نکتیز پنجره هایش که پشت آنها خلق منزل کرده بود همچون کاخی به نظر می‌آمد و بالکن‌های جلوش را پیکره‌های شیر زینت بخشیده بود در طبقه پایین یکی دیگر از خانه ها دارو خانه ای بود و وزش نسیم گاه بوی اسیدفینیک به همراه میآورد. آنجا نشسته بود استاد و هنرمند صاحب شعن نویسنده بخت برگشته همان که با پالایش صورت هنری از بیادابی کلیانه و پرهیز از اعماغ تیر و تار فضاهای زیر جهانی همواره در ترد قرایز ناپسند کوشیده بود هنرمندی که بر قله شعن و شهرت قدم گذاشته بود بر دانش خود چیره گشته از تنز به مانده غید قید و بندهای اعتماد همگانی را بر خود همبار کرده بود آنکه شهرتش رسمیت و نامش اشرافیت یافته بود و کودکان دبستانی را به فرا گرفتن سبک نگارشش فرامی او آنجا نشسته بود. پکهایش بر هم افتاده و فقط گهگاه از زیر آنها نگاه تمسخرآمیز و نااستوار به یک سو گشت و پس از لحظه ای دوباره پنهان میشد. و لبهای وا با بزکی که بر از آن بود، تک تک کلماتی را بیرون می ریخت، گویای افکار نیمه رؤیایی شگفت که مغز خابالودهش از خود بروز می داد. زیبایی خوب توجه کن فاید تنها زیبایی است که خداایی است و در همان حال قابل رؤیت. و چون این است که زیبایی راه جسم است و فاید کوچک راه هنرمند است به سوی جان ولی حال ای عزیز من گمان می کنی انکه راهش به سوی جان از طریق حواس میگذرد هرگز به خرد و شعن راستین انسان می رسد یا برعکس تو میاندیشی من این را به رأی تو میگذارم که این طریقی خطرناک و دلانگیز است به راستی راهی به خطا و گناه که ناگزیر به گمراهی می انجامد چون تو باید بدانی که ما شاعران نمیتوانیم راه زیبایی را در پیش گیریم مگر که ارس همراهیمان کند و راهبری را به دست گیره. آری اگر هم ما به گونه خیش قهرمان باشیم و نبردی جنگ آزموده باز به مانند زنانیم. چون تعالی ما به احساس است و شور و شوق ما به تبع از عشق میل ما این است و ننگمان هم همین پس می‌بینی که ما شاعران نه توانیم بود و نه صاحب که ناگزیر به گمراهی می رویم و به طبع ماجراجویان حقیر احساسیم. شیوه استادانه قلممان دروغ و دیوانگی است. نام و آوازه افتخارامی زمان، یک شوخی مسخره، اعتماد عامه به ما بینهایت نهایت مبتزل، تربیت مردم و جوانان از راه هنر، است نابخردانه که باید ممنوع شود مگر ممکن است کسی که میلی طبیعی و اصلاح ناپذیر به تباهی دارد برای تربیت مردم صالح باشد البته ما دوست داریم این میل را کتمان کنیم و شأن خیش نگاه داریم ولی هر کار هم که بکنیم این میل ما را به همان سو می کشد. و این چونین معرفت فساد آفرین را رد می کنیم چون فیدروس معرفت شعن و وقار ندارد دانا و فهیم و بخشاینده است از آداب بی است میلی به تباهی دارد خود تباهی است پس ما؟ اینها را با قاطعیت رد می‌کنیم و از این پس تمام توجهمان به زیبایی خواهد بود یعنی سادگی بزرگی و وقار نوین، ناوابستگی دوم و آداب ولی آداب و ناوابستگی فایدروس به مستی می انجامند و تمنا می‌توانند انسان والا را به احساس راه برشوند این گناه هولناک که وقار زیبایش خود آن را غارتبار میخواند به تباهی می‌انجامد اینها به تباهی می‌انجامند می‌گویم اینها ما شاعران را به تباهی می‌کشانند چون ما نمی‌توانیم به آسمان برشویم ما فقط می توانیم به بیادابی در شویم و اینک من میروم فیدرس تو اینجا بمان وقتی مرا دیگر ندیدی آن وقت تو هم برو چند روز بعد گستافون آشنباخ که احساس کسالت می کرد دیرتر از معمول هتل ساحلی را ترک کرد. او دچار سرگیجههایی میشد که فقط جسمانی نبود و با ترسی که شدتی ناگهانی می‌یافت، همراه بود. با احساس نومیدی و عجزی که معلوم نبود به دنیای بیرون مربوط است یا از اعماق خیشتن او برمیخیزد در تالار متوجه تعداد بسیاری چمدان و ساک شد که برای حمل آماده گذاشته بودند از دربان پرسید مسافر کیست و در پاسخ نام اشرافی لهستانی را که پنهانی به آن آشنا بود شنید از شنیدن این نام قیافش با آن خطوط فرو افتاده تغییری نکرد و فقط سرش را بلند کرد گونه که سر بلند می کنند چون ضمن حرف ها خبری می شنوند که به شنیدنش نیازی ندارد و فقط پرسید کی و آن مرد پاسخ داد بعد از شام پس سری تکان داد و به طرف دریا رفت آنجا وضعی به هم ریخته بود بر آب کم عمق و وسیعی که ساحل را از نخستین پشته شن که کنار دریا دراز افتاده بود جدا میکرد، لرزه‌هایی از جلو به عقب در جعد ریز امواج میوزید بر آن اشرت‌کده متروک که زمانی چنان جنب و جوش رنگارنگی داشت، گفتی هوای پاییز فرو افتاده حالت وداع همه جا را فرا گرفته بود دیگر کسی در پاکی داشتن شنهای ساحلیش نمی کوشید. دستگاه عکس برداری ظاهراً بی‌صاحب مانده بر سر پاگش کنار دریا قرار داشت و پارچه سیاهی که بر آن کشیده بودند از نسیم خنکی که وزیدن گرفته بود پر سر و صدا در اهتزاز بود تا چیو با سه چهار همبازی که برایش مانده بودند در طرف راست اتاقک خانوادگیشان در حال بازی بود و آشنباخ تقریبا میان دریا و ردیف اتاقک بر صندلی راحتیش نشسته پتوی بر پاها انداخته یک بار دیگر تماشای او میکرد بازی که از دید مراقبین به دور مانده بود، زنها ظاهرا سرگرم فراهم کردن مقدمات سفر بودند، از نظم بری بود و دستاخر به هم خورد پسرک تنومندی که یاشو صدایش میزدند، لباس کمرداری به داشت و موهای سیاهش را روغن زده بود با گلوله ماسعی که به صورتش پرتاب شده بود چشمش آزرده شده با تاچیو بنای کشتی گرفتن گذاشت که با شکست پسر زیبارو خاتمه یافت ولی چنان که گفتی آن حال و هوای ودا احساس بندگی همبازی زیرده است تبدیل به خشونتی سبعانه می شود کشتیگیر غالب باز هم دست از سر مقلوب خود برنمی داشت بلکه بر پشتش زانو زده صورتش را بدون وقفه در ماسه فرو می‌فشورد به گونه‌ای که تاچیو را که از همان کشتی گرفتن هم به قدر کافی از نفس افتاده بود خطر خفه شدن تهدید می‌کرد تلاش‌های این یک برای نجات خود از زیر بار هیکل رقیب تنها تقلای ضعیف و بی بود که برای لحظاتی کاملا قطع و آنگاه به صورت تکانی کوتاه تکرار میشد. آشنباخ وحشت زده خواست برای نجاتش از جای خود بپرد که رقیب زور ورز دست از او برداشت. تاچیو که رنگ از رخسارش به کل پریده بود، نیمخیز شده دستی تکیه داده، برای چند دقیقه با موهای به هم ریخته و چشمانی که سیاهی می رفت، بی حرکت نشست. آنگاه تمام قامت از جایش برخاست و آهسته دور شد. همبازی سیاه مو که گویا از زیاده روی خود پشیمان شده بود، به او رسیده سر آشتی داشت. تکان شانه ای او را اغبراند تا چیو از میان آب به راهش به سوی ساحل ادامه داد پا بود و لباس نخی راه راهش را که با بند سرخی یقهش را میبست به داشت. جلو مد ایستاده با سر کج گرفته اشکالی با نک پا در ماسه ها کشی، و آنگاه در ساحل کم عمق که در امیقترین ترین هم هنوز آب به زانویش نمی رسید سوست و بی پیش رفت تا به پشته شن رسید لحظه‌ای آنجا ایستاد نگاهش به دور دوردست بود پس آنگاه بنا کرد آن باریکه دراز بیرون افتاد از آب را آهسته قدم زنان به سمت چپ طی کردن او که آبهای ساحلی پهنی از خشکی و هوس غرورآمیز از همبازیهایش جدایش میکرد با گیسوانش که در میان دریا از وزش باد در اهتزاز بود بر زمینه افق مهالود جلوه‌ای تنها و بی یافته بود پس بار دیگر به نظاره ایستاد و ناگهان چنان که گفتی یادی خاطره‌ای به این کار وادارش میکند دستی در پهلو با چرخشی زیبا بالاتنه را گردنده از فراز شانه به ساحل نگریست آن نزارگر آنجا نشسته بود همان گونه که آن زمان که نخستین بار این نگاه خاکستری سپید فام از آن آستانه به سوی او برگشته به نگاه او برخورده بود سرش که بر پشتی صندلی آهسته حرکت گامهای آن رهرو تنهای درون انواج را دنبال کرده بود حال گفتی به پیشواز نگاهش برخواسته بر سینه آمد چندان که نگاه چشمانش از پایین به بالا خیره شد و در همان حال صورتش حالت خوابی امیق به خود گرفت ولی بر او چونین می نمود که گفتی آن روح رنگ پریده محبوب از آن مکان دور به او لبخند می زند و برایش دست تکان میدهد گفتی دست از پهلو بلند کرده به دور دست اشاره میکند. و خود سبک گام و سبک بال به سوی آن دنیای پر بشارت دهشتناک پیش میرود. و چنان که پیشتر نیز اغلب چنین کرده بود تکانی به خود داد که در پیش به افتاد. دقیقه ها گذشت تا به کمک آن میهمان هتل که در صندلیش به یک سو فرو افتاده بود شتافتند. او را به اتاقش بردند و همان روز دنیایی از خبر مرگش قرق در ماتم شد. و به احترامش در سوک نشست